روزو بالله السمی العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام و علی نبی نواله تا خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر خیر عرض بکنیم ترم جدید رو خدمت شما تبریک میگی. الله که از صحت و سلامت کامل به لطف الهی برخوردار هستید و از هر گونه گزند و بلایی هم به عنایت الهی انشاءالله دور باشید ما بلاغت دوی خودمون رو با بحث علم معانی شروع میکنیم چون اگر یادتون باشه آخرین بحثی که با هم کردیم که کنایه رو خوندیم و مباحث به بیان به جمع بندی کردیم و به هم شما هم امتحان دادید حالا ما شروع میکنیم به خواندن علم معالی. بنابراین این بحثش اصلا یک بحثیست جدای از مباحث قبل حواستون رو باید یک مقدار بیشتر جمع کنید مباحث این ترم ربطی به مباحث ترم قبل نداره گرچه اون کمک میکنه شما راحت تر میتونید مباحث رو به یا جنس مبحثی چیز دیگه است اینجا بحثه کلام خبری و کلام انشایی بحث میکنیم و موارد دیگری که حالا هر مورد که برسیم فصلی از اون رو باز میکنیم و برای شما میکنیم. اولین بحثی که در علم معانی بحث میکنیم تقسیم کلام به خبر و انشایی خب اولاً کلام چیه کلام چیست سوال اول دیگه بیان الکلام ما افاد دل مستمع فایده تن تامتن یس و سکوت و علیها این تعریف توی کتاب شما نیست و تعریف کلام، چه در نه، چه در بلاغت کلام چیه این تعریفشه الکلامو ما افادل مستمئع فایده تن تمام تن علیه یعنی چی؟ یعنی <تصفح> <تصفح> کلام چیزیه که به مخاطب که تعبیر ازش کردیم مستمع یه فایده ای رو میرسونه مطلبی رو براش بیان میکنه که این مطلب فایده این رو داره یسخ و سکوت و علیها فایده کاملیه متن تام متنش یعنی یسخ و سکوت و علیها یعنی اگر متکلم ساکت بشه احساس میکنه که هرچی رو میخواسته گفته پس یه قرازی من در وجودم هست این رو میخوام به شما منتقل کنم شمای مخاطب این فایده رو به شما بدم، جوری که اگر من ساکت شدم آه، یعنی نقطه گذاشتم یعنی هرچی که میخواستم بگم و گفتم تا جایی که نقطه رو نزاشتم کلام تکمیل نیست نقطه رو گذاشتم کلام تکمیل شد پس کلام چیزیه که غرض متکلم رو به مخاطب میرسونه جوری که متکلم احساس میکنه که اون چی که لازم بود رو بیان کرد. الان نگاه کنید اگر من اینطوری بگم بگم انجا از زیدن ان از زیدن اکرم تو انجا از زیدون اکرم توهو یعنی اگر زید بیاد من احترامش میکنم این کلشی کلامه درسته جا از زیدون فیل و فاعله. اما این جمله شرطه اکرم توهو درسته که فیل و فایله و این جمله جواب شرط این دوتا جمله و همدیگه شده یه کلامه که مقصود من رو بیان میکنه که شرط اکرام کردن من آقای زید رو اینه که بیاد. چیزی کلام. الان مثلا ولعصر ان الانسان لفی خطر. خود ولعصر دروس متعلق به یقسموی مقدر یه, یه جمله است. اون جمله قسم این الانسان خود خسرم درست یه جمله است. اما جمله جواب اصلا. این دوتا روح هم دیگه میشه یه کلام. پس کلام ما افاد المستمعه فائدتن تا آمدن یسه خسوکوتارم. گای وقت هم ممکنه اصلا از یه فعل و یه فاعل تشکیل بشه. روش شده نه؟ نیسته که میگن من قضا خوردم. یه جمله کامل نگاه کنید اون موقع فرق میشه بین جمله و کلام جمله از یه مصند تشکیل میشه یه مصنده ده. ممکنه جمله اسمیه باشه ممکن جمله این جمله است قید نداره که افا مستم افا ایدتا تام مطن یسه حسابه یعنی عبارتی که تشکیل شده از یک مستند و یک مستند الگ به اسناد تام اسناد تام یعنی اسناد فعل به مرفوع خودش مقتدار بفرد یه تام ببینید الان ما جمله شرط داشتیم جمله جواب شرط هم داشتیم. اما مجموعش مشود کلام. الان اگر شما خوب دقت کنید یه نغ رو هم میفهمید اون موقع بین جمله و کلام ارتباطشون میشه عموم خصوص مطلق و اون آقایون منطقی. خوب. یعنی هر کلامی صد درصد جمله است. کسان نمیتونن جمله نوشن. هر کلامی صد در صد جمله است. ممکن است آن دو تا جمله داشته اما هر جمله این کلام نیست. ممکن است جمله شعر، جمله قسم، جمله شد فایده ای گیاه سکوت باشه نداشته باشه پس ما الان کلام رو فهمیدیم تعریفش رو. جمله را هم فهمیدیم رابطه بین این دوتا را هم فهمیدیم خب تا اینجای مطلب رو که دانستید حالا ما میاییم کلام رو تو زبان عربی با خب ما زبان عربی رو داریم بررسوم میکنیم ولی فرقه نمی کنیم باز اسم تشبیه و مجاز و کنایه که گفتم توی همه زبانها هست مال ساختاره و یا نه این هم هم کلام به دو دسته تقسیم میشه حالی به بررسی کردیم فرض کنیم کل قرآن رو همش رو بررسی کردیم عبارات و الفاظ رو دیدیم دو نوعه یک قسم رو اسمش رو گذاشتیم خبر یک اسمش رو گذاشتیم انشاء یعنی کلام دو نوع. کلام خبری کلام اینشایی تعریفم برای هر کدوم داریم شما بگردید میبینید قسم سومم هم نداره نمیتونی قسم سوم براش پیدا کنید یعنی یا خبره یا انشاس حالا کلام خبری کدومه کلام اینشایی کدومه تعریف تا دوتارم بکنید کلام خبری اینه الکلام الخبری تعریف کلام خبری کلام خبری اونیه که قابلیت صدق و کذب داره بدون اینکه ما به قائلش نگاه کنیم یعنی خود کلام که در نظر بگیریم بدون اینکه کیینو گفته اصلا کیینو گفته رو می‌ذاریم کنار تو بدون در نظر گرفتن اون خود این کلام احتمال صدق داره احتمال کسب حالا صدق چیه کذب چیه ببینید کلام من یه معنایی داره بیرون هم یک واقعیت خارجی هست بیرون یه واقعیت یه حقیقتی هست کلام من اگر با اون مطابقت بکنه میشه صدق مطابقت نکنه میشه چیز فرض کنید فرض الان من میگم الان هوا آفتابیست اونی کلام خبریه خب یه مفهومی شما ازش یه فایده تا نمیبرید که در این زمان خورشید داره میتابه هوا آفتابی خب شما میرید بیرون اون داره از یه واقعیت خارجی خبر میده دیگه میری بیرون نگاه میکنید می‌نیس راست میگه پرشید هست و آفتاب هم هست. میگید راست. اگر رفتید بیرون دیدید بارون برف داره میاد. میگید دروغ کرد. کلام دروغ. چیست؟ لذا تعریف کلام خبری اینه. اهل کلام خبری ما یحتمل از صدق اول کسب و لذاته لذاته یعنی لذات خبر خل کلام خبری ما یهتمل از صرف اول کسب و لذاته لذاته واسه چی میگیم چون ببینید الان من گفتم شما مثلا فرض کنید یه کلامی رو میشنوید مثلا حدیث پیامبر پیامبر سخنی میشنوید یا قرآن رو جملاتش رو میبینید یقف رو من یشا این یقف رو من یشا خدا میبخشه هر کی رو بخواد گناهان شد خب این جمله اگه ما در نظر نگیریم مال خداست خدا رو در نظر نگیریم خب این یهتن رو از اما اگه بحث خدا شد و قرآن شد و پیامبر شد این میگه صد درست از صدقه چون احتمال کس دیگه نمیدیم به خاطر قائلش همینطور مثلا شیطان یه چیزی بگه خب این به قول خودمون صد درصد گذبه چون اون که دراست نمیگه ما اصلا با قائل کار نداریم میگیم ما یحتملو از صدق اول کذبه لذاته یعنی لذات خبر نه به خاطر قائلشو گویندش سید هم که گفتیم یعنی مطابقت ولی کلام لد واقع اول خارج مطابقت ولی کلام لخارج اول واقع صدق پس بستی شد مطابقت ولی کلام لخارج اول واقع خب میشه چی؟ ادم و مطابقت تلی کلام اول خارج حالا نگاه کنید ما چرا میگیم خارج و واقع این دو تاست تو تو کتابتون نیست ولی یاد بگیرید خوبم هست که چیزایی که میفهمید و مشکل چون هرچی رو بفهم و یاد بگیره لذت میبره ببینید کلام های خبری دو نوعا یه نوعشون خارجی داره که شما میرید به قول خودمون مطابقت و یا عدم مطابقت رو آزمایش میکنید از من میشنوید الان هوا آفتابیه میرید بیرونم میبینید هست یا نیست این مطابقت کلام خارج یعنی خارج سخن اما بعضی از گزارها بعضی از گذاره ها این طور نیستش که شما خارجی داشته باشه و بخواهید برید و با خارج مطابقت بدید و صدق و که دارید بلکه با واقع و حقیقت این رو مطابقت میدید با واقع و حقیقت یعنی عقلت اینطور طور چشتو میبندید عقل تو به تو میگه که این این است دقیقی کردید؟ مثل چی؟ مثل اینکه مثلا میگیم نقیزان لا یجتمعانه و لا یرتفعانه دو تا چیزی که نقیزند مثل هست و نیست خب اینا لا یجتمعان نمیشه که با هم باشن ولا یرتفعان نمیشه هم که هر دوتاشون نباشن انلقیزان لا یجتنهان ولا یرتفعان مثل علم و جهل نمیشه که علم و جهل نسبت به چیزی هر دو باشه نمیشه هم هر دو نباشه خلاصه یکی هست اون یکی نیست درست شد مثل هستو نیست خب اینو چجوری شما الان با وا کردید رفت تو بیرون نگاه کردید نقیزا نه چشت بستی بودی بودن و نبودن هستی یا نیستی نمیشه که هر دوتاش باشن با هم نمیشه هر دوتاشم هم نباشن اینا رو میگن نقیزه خب این جمله بود کلام بود و شما با واقع اون رو سنجیدید برست شو. پس کلام خبری رو فهمیدیم که ما یحتمل از صدق اولی کذب نزاته بعد هم گفتیم که صدق عبارت است از مطابقتش با خارج و واقع کذب عبارت است از عدم مطابقتش با خارج و واقع خوب. کلام انشاعی چیست کلام انشایی چیست کلام انشایی همون کلام خبری رو تعریفشو بگیرید یهدونه لا قبلش بذارید مالا یحتملو از صدق اول کز بل زاده. مالا یحتملو از صدق او کز بل زاده کلام انشائی انشاء در لغت یعنی ایجاد کلام انشاعی اون کلامیه که احتمال صدق و کز نداره یعنی شما که میگید ایجاد میشه با صحبت شما ایجاد میشه خب چون تو با صحبتت با لفظت ایجادش میکنی پس بنابراین دیگه چیزی نیست که بره باش مطابقت بکنه یا نکنه صدق و معنا نداره مثل مثلا فعل امر. شما میگی ازره تا نگفتی اذرب. طلب ضرب نکردی ازرب یعنی طلب ضرب از طرف متکلم نسبت به مخاطب تا نگفتی طلب ضربی نیست گفتی طلب ضرب شد گفتی ازرب زیدم، زیدو بزن طلب کردی زرب زدن اوی انشاست نگید که اون مخاطب ممکن است انشا رو بره زید رو بزنه یا نزنه اون ربکی به مخاطب اون در واقع امتصال امره اطاعت از امره اون به مخاطب بستگی داره اما متکلم که اختیار سخن دست اوه کلام انشایی مال اونه وقتی میگه ازرب به زن طلب ضرب میکنه تا نگفته هیچ چی نیست طلب زرب نیست گفت طلب زرب شد. پس کلام انشایی چی شد تعریفش؟ ما لا یحتمل از صدق اول کز و لذاده تو اینا هم کلام اینشای. حالا گوش کنید خبر خبر نسبت به انشا مقدمه تو این کلام دو قسم دیگه خبر انشایی کلام خبری مقدمه یعنی اصل کلام خبری چرا؟ چون هم زیادتره خیلی زیادتره یعنی شما وقتی نگاه میکنید جملات رو ممکنه مثلا هشتاد درصدش کلام خبری این یه دلیل که کسرتش کسرتش نشونده دهنده که اصل دو کلام های انشائی از روی کلام خبری ساخته میشن شما دیگه نه خوندید دیگه مثلا فعل را از فعل مزاره مخاطب درست بود فعل نهیو مثلا از فعل مزاره میگیرن لای ناهیه میذارن استفهام رو فعل مزاره رو میارن حل استفامیه سرش این انشاعی از خبری درست میشه و خبری بیشتر است در سخن از انشایی اینو دلائل بر اینکه کلام خبری است شد حالا اگر این مطلب رو تا اینجای مطلب دیدید قواعد کتاب رو ببینید چون من بیش از اون مقدار براتون بیان کردم میگه القواعد الکلام و قسمان کلام دو قسم خود کلامو تعریف نکرده گفته قسمان خبرون و انشاء خبرم مقدم کرده بعد میگه فلخبرو. خبر اونه ما یسه هو. اونیه که صحیح هست ان یقال لغا صحیح هست گفته بشه به گوینده آن انلهو صادقون فیه که اون راست میگه در این کلام او کازبون یعنی کازبون فیر خب این تعریف به این شکل گفته من تعریف رو خیلی دقیق از کتب اصلی تر بیان کردم گفتم ما یحتملو از صدق اول کس بر لذات میگه فعن کانل کلام حالا نگاه کنید فعین کانل کلام مطابقا للواقه این فقط واقع رو گفته من گفتم مطابقا للواقه ول خارج اول خارج اگر کلام مطابق باشه با واقع و خارج کان قائلهو صادقه گویندش رو میگیم راست میگه و این کان غیر مطابقه له یعنی للواقع اول خارج کان قائلهو کاذبه قائله دروخ کن کلام هم میشه کسب خب اینم فهمید انشاء چیه؟ میگه ولی انشاءو مالایی مالا يهتم لا صدق او كذب لذاته مالا انه صادق او كاذب نمیشه به قائلش بگیم که اون صادقه یا کاذبه چرا نمیشه بهش بگیم صادقه یا کاذبه چون با سخن ما ایجاد میشه اصلا خارجی وجود ندارد که با او مطابقت بکند بشه صدق یا نکند بشه کذب بلکه با گفتن من ایجاد میشه خب. حالا اینجا توی این تیکهی که الان میخوایم بخونیم میاد اون بحثی رو که من کردم که گفتم بین جمله و کلام بقول قول خودمون عموم و خصوص مطلق هستش هر کلامی جمله هست اما هر جملهی کلام نیست این رو یه کمی میشکافه ولی به یه میگه چی؟ لکل جملت هر جمله من جمل الخبر ولی چه جمله خبری باشه چه جمله انشایی یعنی در واقع هر کلام خبری و انشایی خب هر کلام خبری و انشایی هر کلام خبری و انشایی رو شما در نظر بگیرید حالا این جمله اگر به خودمون کلامم هم نباشه همین ها؟ ولی حالا چون بحث ما تو کلامه میگیم جملهی که کلامه یعنی به قول خودمون فایدهی تام داره لکل جملت من جمل خبره ولی انشایی میتونست بگه لکل کلام خبری یعنی و انشایی فرق نمیده رکنان هر کلامی دو رکنو داره چون هر کلامی جمله هست دیگه اون دو رکنش کدومه محکوم علی و محکوم به محکومان علی و محکوم به بهش میگن مسندانه علی و مثند بهش میگن درست نه دو تا رکن داره نهاد و گزاره محکومون علیه و محکومان به و یو بالا اول و علیه اولی رو میگن مصندن علیه درست شد و سانی مصنده دوباره میروی مصند. نهاد و گسار یعنی حتما باید این باشیم کلام خبری کلام انشایی تو این زمینه یکی دارای مثند و مصنده علیه جمله هم هستند هر کلامی جمله است جمله هم باید مسند و مسندالک باشه من گفتم اما نگاه کنید شما توی نحو توی نحو جمله خودتون رو دارای اجزایی کردید جمله توی نحو دارای اجزایی میشد. مثلا فعل بود بعد فاعل بود بعد مفعول به بود اصلا مفاعیل خمسه بود پنجتا تا مفعول ها بودن حال و تمیز و استثناء بود ها اینا همه مال جمله بودن حال تمیز استثناء پنجتا تا مفعول اینا همه مال جمله بودن فاعلم که داشت مفعول به میگفتیم می له میگفتیم فی می میگفتیم مفعول مطلق میگفتیم اما توی بلاغت جمله ما کلام ما سه تا روکن داره تو بلاغت کلام ما چند تا روکن داره؟ سه تا یک مصند و نلعی. دو مسند، سه قید تمام اون چیزهایی رو که خارج از مصند و مسند هستن بهشون میگن قید قید پس اگر من گفتم زرب تو زیدن یا مرد جماعت امامال امیره زربن شدیدن آ؟ مونالله چند تو میشه مصند مصنده مصنده. این دوتا روکنه زیدن یومن جمعاته همامل امیره مفعول به ظرف زمان ظرف مکان ضربا شدیدن مفعول مطلق نوعی اینا همه قید قید لذا ببینید چی گفت گفت و یوسم مل اول و مصنده و ثانی مصنده اولی رو میگم مصنده اله دومی رو میگم مثند و علی علازالک و هر چی که از این دوتا بگذریم هر چی که از غیر این دوتا باشه و مازاده الازاله فاقوبه قید. قید اما یه چیز رو یاد بگیریم که تو کلام تو کلام بعضی چیزها هستند نموسندند نموسنده نه غیدند. بلکه اونها قید قید ما هستند مثلا اگر من گفتم جا غلام و زیدن گوش کنید جا قلام زیدن آمد غلام زید این جا مصنده غلام مصنده الیه این دوتا مصنده اون زید چه کار است اون زید اصلا ربطی به این جمله نداره چون میتونست این زید نیاد بگم جا قلامون این زید آمده قلام رو داره معرفه میکنه قیده برای تعریف قلامه داره قلام رو مشخص میکنه این دیگه تو کلام قیده کلام نیست قیده مصندان الیه در کلام خود کلام اینجا تشکیل شده از مصند و اگه گفتم جا از زیدان یوم الجماعته اون یوم الجماعته غید کلام ماست چون متعلقه به جا است حالا. اما زید نه لذا ببینید میگه و ما زاد علی ذالک غیر المضاف الی غر ازمافه وسله سله موصول یعنی اگه من گفتم جاء الذی ابوه معلمون اینجا جاءه فعله الذی هم موصول فائل شماست ندهلنگ. اینا دراشن کلام ها. اما ابوه و معلمان اون سله موصول ربطی به کلام نداره اون سله موصول سله موصول موصول رو توضیح میده اصلا سله موصول بیانگر موصوله به موصول میگن مبهم. جزء الفاظ مبهمات اون سلش توضیح میده این دیگه قید کلام نیست قید متعلق کلامه یعنی مصند و قید اونه پس کلام در نزد بلاغیها از سه قسم تشکیل میشه یک مصند و دو مصند سه قید بعضی چیزها هم قید کلام نیستن قید اجزای کلامه مثل مضاف و مثل سله مص و مازاد علازاله که غیر المزافره و سله فهو غیدان درست شد؟ حالا نگاه کنید اون سه پایین هاشیه میگه غید ها تو کلام زیاده القیود یه عدوات و شرط عدات شرط ها همه غیده ان ازا لما اینو غید کلام میگه مثلا این مستقبل محتمل و نفعه مستقبل محق و لما عدات شرط مازی نرقی عدات و شرط و نفعه عدات نفی. مثلا ما لا لن نا عدات نفی. اگه شما بگی لن یکتوبه فرق میکنه با این بگی لا یکتوبه لا یکتوبه یعنی نمی نویسه. لن یک توبه داری میکنی مستقبل هم هست پس لید. درست شد ول مفایل. مفایل خمسه ول حال و تمیز ول استثناء ول توابه. که میدونید دیگه پنج داشت صفت عطبیان بدن تحکید عطب حروف این توابع خمسه و نواسخ نواسخ هم نه. مثلا شما میگه زیدون قایمن بعد کانه برسرش در میاری کانه زیدان قایمن این کانه میاد جمله میبره مازی قید این نور سرش در میاری این نزیدان قایمن این نمیاد جمله تکت میکنه قید پس اینا تو جملات میشن قید بعضی چیزها هم مثلا اصلاً, اصلا قید نیستند مثل مضاف مثل سله اونا قیده بگید جمله ما نیست بلکه بگید ها قیده, قیده ما هستند این تا اینجا مطلب رو درس ما گفته شد کلام رو گفتیم تعریف کردیم مباحث رو بیان کردیم حالا یه دو سه تا نکته هست اینجا که لزوم داره شما این رو بدونید یکی توی همین قسمتی که مصند و مصنده علی رو میگفت موازه بالای همین حاشیه سه میگه موازه مصنده علی مصنده علی تو زبان عربی چه جاهایی دیده میشه؟ یعنی چه چیزهایی هستن که مصنده علی همه؟ مصنعه در کجا هاست؟ مواز اون مصنعه در اینو من نه بخوندید. فایل. میکش فایل. مصنعه فایل میشه. مثل خلق الله و سماواته. خلق الله و سماواته الله فایل خلق است. ون نائبه. نائبه فایل. فایل نیس نایبه. مثل خلقل انسانو زعیف ها. خلقل انسانو زعیف ها. الانسان نائب فایل. و المبتدا اون خبر مبتدایی که خبر داره یعنی مبتدای اسمی بهش میگن دو نه مثل الله نور است سماوات الله مبتدا نور است سماوات الله نور است سماوات میشه تا و ما اصل هو المبتدا و هر چیزی که اصلش مبتدا بوده الان نواسخ و سرش داره ان انسان لفی خست نداد کان الله و قفورا ریم کانه در اون ال انسان اون الله مسند با اومدن ناسخ مسی بودن خودش از دست نمی ناساسخ پیدان و ما اصل او از که اسم کانه؟ و اخوات ها مثل اسم کانه و اخوات کانه اینه و اخوات اینه و نواصف خب این هم شد، چیزی نبود دو موازه مصند کدومه موازه مصند یکیش یه فعل و تام یکیش فعل تام نه یعنی فعلی که با فاعل خودش تشکیل جمله بده فعل تام نه پیدا میکن نه فعل ناقص بس و کادوی هم فعل تام مثل خلق الله و سماباد خلق یکیش فعل تام که میتونه معلوم باشه میتونه مشهور باشه دو و المبتده المکتفی به مرفوعه که بهش میگن مبتده وصفی مبتدایی که اکتفا میکنه به مرفوع خودش حالا مرفوعش فاعلش باشه یا نائب فایلش مثل اینکه شما میگید اقائمون از زیدانه اقائمون از زیدانه یا ما قائمون از زیدانه این قائمون مبتدایی از زیدان فاعل صد مصد خبر یعنی دیگه خبر نمیخواد پشمیان مبتدای وزفی اقایمون از زیدانه ما قایمون از زیدانه. حالا اگر به جای قایمون مثلا بود ما مزروبون امرانه یا امزروبون الامرانه اون مزروبون شد مبتدای وزفی الامران نائب فائل سده مبتدایی که اکتفا میکنه به مرفوع خودش یعنی فائل مرفوع گفته چشم فائل رو شامل بشه مثل اقایمون از زیدان هم نایب فائل رو مثل ام از الامران و خبر مبتدا یکی دیگه از مسندها خبر مبتداست زیدان قایمون اون قایمون مسنده و خبر مبتداست و ما اصلهو خبر المبتداه می اون که اصلش خبر مبتدا بوده الان کانه ورساج کان از زیدون قائما اون باز مسند هیچ فرقی مجد که خبر کانه و اخر بود یکی دیگه از مسند ها اسم فعل اسم فعل مثل خود فعل از معنا عمل مثل فعل ولی مثل فعل صرف نمیشه اسم مثل من مننا از ذلتو الان حیحات مننا از ذلتو حیحات میشه اسم فعل؟ من مننا جار مجرور متعلق به حیهات از ذلتو فائل این بار گفته بعودت با بَعُدَتْ مننا از ظِلَّتُو بَعُدَتْ مِنَّا از ظِلَّتُو بَعُدَتْ مِنَّا از ظِلَّتُو اسم آخری و و مستر یعنی مفعول مطلق مفعول مطلقی که نیابت کنه از فعل عبر مفعول مطلقی که نیابت کند از فعل عبر مثل و بل والدین احسان این بن والدین متعلق به احسانن احسانن مفعول مطلق جای احسنو نشسته جای احسنو احسان کنید نیکی کنید در واقع اون احسانن که جای احسنو نشسته الان مسند ماست مم. پس یکی دیگه از چیزهایی که مسند واقع میشه این به نیابت مسند واقع شده مثل اسم فاعل که به نیابت از فعل شده اون مطلقی که نیابت از فعل امر کرده مثل وبلوال دینه احسان مثل تو کتاب مبالی خوندید تو بحث مفعول و مطلق میگه زربن الجانیه یه الجانیه مفهول زربنه زربن میگه جای اضرب نشسته یعنی اضرب الجانیه بزن این گناهکار و این خلافکار خب این مبحث تا اینجاش تمام شد و ما خوندیم حالا بیاید توی دیگه مثال ها میگه مثال باید بخونیم دیگه برات شد خبر رو فهمیدیم انشار رو فهمیدیم تعریفشون رو دانستیم حالا دیگه مثال اگر نگاه کنید تو مثال ها هم تا مثال زده. این شش تا سه تا اولش خبریه یعنی خبر رو داره بیان میکنی ستای دومش انشاست تعریف داره میکنه حالا دیگه بخونیم شما نمونه میکنید میگه قال ابو اسحاق الگزی ابو اسحاق قزی مال همین منطقه قزه که الان حماس در اونجا حاکمیت داره و اسرائیل هم هر چند مدت یه بار ظلم بی نهایت میکنه اونجا رو میکوبه یک باریکه ای رو و زندان بزرگی ایجاد کردین، این قده سرطانی میگه این آقای ابو اسحاق غزی این طور گفته این نگاه کنید شاعرون شاعری شاعریست نیکو اتافی قصائدهی اتواله به کل بدی در قصائد بلند خودش هر نوع بدی ای رو شما میبینید استفاده کرده از زیبایی های بدی مولده به غزته در غزه به دنیا آمده و هیه بلدتون به شام غزه سرزمین شام یکی از شهر شام بزرگ و تو بفی از سنت خمسه معتن و عرب این و سال 524 هم از دنیا رفت. خب این آقای عبو اسحاق ببین چی میگه میگه لولا ابو تیب ابو کنیه آقای متنبیه کنیه آقای متنبی لولا ابو تیبه الکندی لولا ابو الطيب الکندی که از طایفه کنده بوده لولا ابو الطيب الکندی یو صفات ابو عبادتیب. لولا ابو الکندی این ابو الطيب مفعتاذ الکندی صفاتش خبرش اینجا واجبه والا هست بخوندید یعنی لولا ابو الکندی الجندی موجودون اگر ابو الطيب کندی متنبی نبود چه میشد ممتلعت امتلأ یعنی پر شد ملعه یعنی پر کرد ممتلعت مسام الناس مسامع یعنی گوشها آزان پر نمی گوش گوشهای مردم من مد ابن همدان من مد ابن همدان ابن همدان سیف و است. چی گفتیم بیت؟ میگه اگر ابو تهیه کندی یعنی متنبی نبود پر نمیشد. گوش های مردمان از مدح ابن همدان این همه مدح ابن همدان رو مردم تو گوششون، نداشتند اگر عبادتیب متنبی نبود یعنی چی؟ یعنی مردم اگر سیف و رو میشناسند اگر از او به نیکی یاد میکنند همه اینها فقط و فقط به خاطر آقای متنبیه باعث و متنبی بوده اگه متنبی نبود کسی سیف و ای این حرف این آواست یه جمله از این لولا تا این ابن همدان یه کلامه چون لولا عبودتقی بلکندی موجودون میشه شرط لولا منطلعت تا آخر میشه جواب لولا آه. لولا جواب میخواد این لولای امتناعیه بهش میگن جواب میخواد خب گفت اگر آقای متنبی نبود کسی ابن همدانی سیف و دولهی نمیشنا اصلا این همه خوبی های سیف و دوله سر زبانهای مردم تو گوش مردم نرفته خب این کلام احتمال داره صدقه باشه احتمال داره کذب داشت خب چجوری ما میتونیم صدقه کذب شو بفهمیم میریم بین مردم میبینیم مردم سیف و دوله میشه بله بله از کجا میشناسیم یه شعر از متنبی دیگری تو طور دیگری همی طور, دیگری همی طور راست میگه فقط متنبی بوده که اینو مشهورش داد ولی گاهی اوقات ممکنه بریم بپرسیم سی فوت دو بله آقای ابو فراس همدانی به سر همون شاهر بزرگ او چقدر در مورد شعر گفته دیگری دیگری اه خب اگه متنبی هم نبود سی دلار دولارو از کلام آقای ابو اصحاب درست نیست احتمال صدق داره احتماله بگید که اسم داره خب اینو فهمیدی دوم این مثال دوم و قال ابو تیب خلا خود های متنبی چی میگه میگه لا اشراعب با. اشراعب با. یعنی اشتیاق نشون داد سرک کشید لا اشرعبو با ما لم یفوت طمعا طمعا مفول ل میگه اشتیاق نشون نمیدم به چیزی که از دست ندادم هنوز فوت نشده از سر تمعن مثلا یه کسی گفته یه وامی میخوام بد بدم یا یه کمکی میخوام بد بکنم هنوز معلوم نیست که نکنه هنوز منتفی نشده اینطور طور نیستش که هی من از سر تمه هی اشتیاق نشون بدم هی برم صد در خونه شون صبح برم صبح برم عصر برم هی چی شد چی شد چی شد تمام چیزی که از دست من نرفته است هنوز طمعی برای او نمیکن و تو با تیبیتو یعنی از بیتوت شب رو به صبح رسوندن. ولا عبیتو علاما فاته یعنی فاتنی حسرانا. ولا عبیتو حسرانا و شب رو هم تا صبح قصدار نمیخوابن. علاما فات یه چیزی که از دست داد. گفته بودن یه چیزی میدن نداد. امید داشتم یه چیزی بشه نشد خب فوت شد اینطور نیستش که دیگه خواب و خوراک از من گرفته بشه و لا عبید و علا ما حسرانم از غصه نمی میره. نسبت به چیزی که از دستم رفت پس چی گفت گفت نسبت به چیزی که هنوز از دست ندادم تمری ندارم اشتیاق نشون نمیدم. و نسبت به چیزی هم که از دست دادم قصدار نمیشن و زانوی غم به بقل خب اینم متنبی گفت حالا نگاه کنید این کلام متنبی دوتا کلام یکی لاعش و اب و یکی ولاعبی تو به هم عدش این دوتا کلام این دوتا کلام احتمال داره صدقشه احتمال داره که از باشه صدقش چجوره؟ صدقش اینه میریم رفتار متنبی رو میبینیم میبینه واس میگه سیف و بش گفته هزار دینار بهت میدم یه بارم نایمه ده بگه چی شد از اون باید هزار دینار گفته بهش میدم نه داده عین این خیالش هم نیست چکش هم نمیده واس گفته بگه همین جای. اما اگر نه رفتیم دیدیم سیف و بش گفته یه دینار بهت میدم دیگه در خونه اونو به نکرده رفته آمده فلان به چی شد چی شد از اون وقتی بهش نداده شب تو صبت داشته گریه میکرده و تو سر خودش مستده دروغ میگه صدقه کذبش میداری ما شخص میشه داریم. پایین نبا کنید دو اشراعب به ایلش شیعه یعنی تتل لعیلی یعنی اشتیاق به اون نشون داد سرک برای اون کشید خب این دوتا سوانی رو نگاه کنید و قال عبول عطاهیه حالا آقای عبول از شعرهای دوری عباسی میبینید چی میگه میگه انل بخیل آدم بخیل انل البخیل و این افاد قنن قنن یعنی سروتن افاده یعنی استفاده به دست بیاره قنن نکره از دلالت بر تعظیم بکنه یعنی ثروتی از اون و این این یعنی اگرچه چه این لطورا جواب این است خبر این است اون لام شفیه لام مزهلقه برای خبر لطورا علیه مخایل الفقر بقاایید یعنی علائم نشانه ها. فقرم که میدون چی گفت؟ میگه بخیل اینه این آدم رو بهش میگن بخیل بخیل کسی است که ل تو را لام تاکید میکنه یعنی به طور یقیم بخیل کسی است که دیده می شود بر او علائم فقر میگه آدم بخیل، شما نشانه های فقر رو روش میبینید میبینید نگاه میکنید وقت و لباسش نامرتبه قضاش قضای نامرتبی میخوره تفریحاتی نداره خرج نمیکنه آدمید نشانه های فقر برش دیده میشه و ان افادقه ند اگرچه فائده برده از ثروت از این نگاه میکنید اوه ثروتی دارد نگو و نپست اما نوع زندگی او نشانه های فقیر داره میشه پس از نظر این تعریف بخیل کیه؟ اون است که ثروتی دارد ولی از آن استفاده نمی کند و نشانه های انسان فقیر بر روی او دیده می شود یه تعریف بخیر اینه. قولا ما را میافتیم میریم بیرون ببینیم همین توره میریم بیرون می‌بینیم یه نفر هست ثروتی داره به کسی هم نمیده چون اون کسی که به کسی نمیده دیگه اون یه که خودش که نمیخوره به کسی هم نمیده اینو میگن بخیل بعد میگه که این داره وا نشانه های فرقو داره میریم بیرون نگاه میکنیم می‌بینیم باص میگه یه نفر از بین چقدر ثروت داره اما نوع زندگیش آخرت یزید میگیم راست کن حالا اگر رفتیم و دیدیم نه یا نفری سروتی داره ولی خوبم میخوره نشان های فقرم میگیم این به کسی هم آزر نیست بده میگیم این کلام درو ولی خود راست کن این البخیل و این افادغنن لطورا علیه مخایل الفضری پایین نگاه عفاد افادغنن به منا استفاده بهره ببرد ازن ول مخایل الالامات مخایل الالامات یقول ان البخیل تظهر و علیه دائمان امارات و فقه و علامات بخیل دائما بر اون ظاهر میشه نشانه ها و گزاره های فقر فقر نشانه هاش در روز ظاهر میشه علاماتش و این کانقنی یک کسی اگر چه خیلی کسرات و سروتام داره ولی فایده نداره. حالا نگاه کنی تو بحث و براتون بخونم که این بحث خبر و که خوندیم دیدی. میگه البته یخبر نو عبوس هاگ ال قاضی یو به عنّ ابدیه بر ال متنبیه حوالا زی نشر فضاء ایل سایف ابن همدانه و از آهای ناس، از آهای یعنی بحث‌ها یعنی ها بخشش میگه خبر میده به ما ابو اسخاق به این که ابو طیب متنبی او کسیست که فضاقل سیف الدوله ابن همدان علی ابن همدان بوده سیف الدوله لغبشه این علی ابن همدان رو که سیف الدوله باشه فضائلش رو بخش کرده بین مردم و یقول و میگه لولا عبودتیب میگه اگر عبودتیبی نبود متنبی نبود ما زا از شهرت و حاضر عمیر. اصلا شهرت این سیف و بین مردم پرش نمیشد. ولا عرف عرفن ناسو من شمایلی هی کلن عرفون و مردم از شمایل او آنچه را که میشناسندن آن نمیشناختن. هرچی میشناسند از متنبی و حاض قولن یتم ان در قضی و سااد من فیه کم و یتم لانگکنه کاذونعنی کازه ب مییه کلام یه احتمال دارید آقای قضی درش راست بگه احتمال همدل راست نکن احتمال هر رو تاست. ف او و صادون صادف است انکان قول هو مطال هم دل اگه ما رفتیم واقع و خارج بررسی کردیم دیدین کلامش مطابق میشه راست. کاذون انکان قول هوو غدم مطابقه نه. و این قولش کاذب اگر مطابق با واقع نباشه خوب تمام بیایم بیت دوم و متنبی فی المثال الثانی یخبر عن نفسی متنبی داره از خودش میگه خبر مید. بأنه قانع میگه من آدم قانعی هستم رازم به حالی راضی هستم به حال خودم به حال هلتی به اون حالی که هو فیها به اون حالی که من درش هستم راضیه گفت هر هرچی دارم به همون رازی هم راضی فلیس من عادته ی عنیت تلع مستشرفا الی و آد، مستشرفا یعنی مشتاقن و نیست از عادت او پس نیست از عادت او اینکه سرک بکشه آن سرک بکشه مستشرفا الی ما و آد، در حالی که مشتاق است نسبت به آنچ که قرار بشه نسبت به آنچه که قراره بشه مشتاق باشد تو نه و لیس من دعبه در دعب یعنی عادت بازم از عادتش نیست ان گندم علاما فاض این که پشیمان بشه نسبت به آن چه که از دست داده بشینه و زانو ازن. و من ال یکون کاذب غیر صاد احتمال داره صادق باشه احتمال داره کاذب احتمال داره راست بگه احتمال داره راست نکنه خب به قبلی میریم بررسی میکنیم ببینیم که آیا در کلام خودش صادق است یا صادق نیست کزاله که یجوز و همچنین جایز است. این یکون عبالتوهی فیلم سال سال, سال, سال, سال صادقا صادق هستیم آقا صادق ماشه در اون چیکی در مورد بخیل گفته درست شو؟ کزانی که یجوز اینکون عبول عطاهیه فلم سال سالسه فلم سالس سالسه صادقن فیما قاله وده ها ترانچ گفته وده کرده صادق باشه و یجوز اینکون غیر صادق با ممکن حساس صادق نباشه اینا کلام خبری اما کلام های انشائی ببینید گوش کنید من, من یه مبحثی بیان کنم که یه مقدار برای درس بعدمون هم زمین سازی بشه بعد این مثالها رو بخود ما انشار رو تعریف کردیم گفتیمونیه که احتمال صدق و درش داده نمیشه لذات مالا یحتملو از صدقه اول کس و لذات به این دلیل هم هستش که اصلا خارجی نیست که مطابقت با او بکند یا نکند چرا؟ چون با کلام ما ایجاد میشه انشاء انشاء در نزد علمای بلاغت دو نوعه همینطور تو که نحوم ها, ها از اینا گرفتن انشاء کلام انشائی دو نوعه یک انشاء طلبی یک انشاء طلبی دو انشاء غیر طلبی انشاء طلبی انشاء بگید غیر طلبی انشاء دوم انشاء کلام تقسیم میشه به خبر و انشاء خبرو گفتیم حالا انشا. انشا دو جوره انشاء طلبی انشاء غیر طلبی خب انشاء طلبی همونطور که از اسمش پیداست اونیه که توش طلب هست یعنی هنگامی که ایجاد میشه توعن با طلبه طلب چیزی این انشاء طلبی تاش توی کتاب بلاغت بحث میشه همین پنشتا یک امر امر که در واقع طلب کاری دو نهی که در واقع طلب عدم کاری انجام ندادن کاری ام نه سه استفهان که طلب فهم چیزیه طلب فهم امر نه استفهام تمنی تمنی که با لعیت شما میگفتیم طلب امر محال حالا میگیم محال مستحیل طلب امر محال یا مستحیل آخری هم ندا ندا هم طلب یعنی شما میگه یا زیدو این جمله یعنی شاییه طلب اقبال زیدو کردیم طلب اینکه زید برگرده بگه بله پس انشای طلبی چند تا شد؟ تا امر، نه، استفهام تمنی، ندا. این تا انشای تلوی البته بعضی خوردریزانی هم داره مثل عرض و تحزیز و اینجور چیزها که بعدا خواهیم گفت اونها داخل همینها میاد یا چون اهمیت آنچنانی ندارد ذکر نشده معانی ثانویه نداره ذکر نشده عمده بحث این پنج داست. اما انشاء غیر طلبی چیه انشاء غیر طلبی اونیه که با تلفظ ما ایجاد میشه با تلفظ ما ایجاد میشه اما توش طلب نیست توش طلب نیست مثل سیغه تعجب که تو نحوم خوندید انشاء تعجب چون وقتی ما احسن زیدا بهچه زید چق قشنگه تا اینو نگفته بودی تعجبی نشده بود. گفتی انشا شد اظهار تعجب, تعجب. مدح و زم سیغه مدح که نعم و به انشای مدح و زم میگه، تا نگفتی نعمر الرجلو زیدون مردی است. مرد نشده گفتی مرد دیسترکز ند مثل سیره انشا سیره انشایی تعجب سیره انشایی مدحوز مثل قسم تو نگفتی والله قسمی نخوردی گفتی والله قسم خوردی دیگه حالا اگه خلافش انجام بدی باید کفاره قسم بدی صدق و کذبم نداری قسم انجام شد ایجاد قسم شد مثل نظر تا موقعی که سیغه نظر نگفتی نظر تو درسته به شکل مازی میگی ولی این داری همین الان ایجادش میکنی سیغه نظر میگه نظر میکنم اگه قبول شدم فلان کار خیر رو بکنم خب نظر کرد همین تا گفتی نظر ایجاد شد نظر اگه اون قبول شدی و انجام بگی ندی کفاره مثل سیغه عقد و نکاح و اون آقایی که میگه انکه تو زوجت و متعت تو داره سیغه عقد میخونه اینا ماضیه ولی اینا معناش ماضی نیست در سیغه شکلش یعنی همین باره میگه انکه تو همین الان ایجاد محرمیت میکنه و دقیقه یه چیز خواهد که حالا اونها رو خواهد پس انشاء دو قسم شد یکی انشاء طلبی یکی انشاء غیر طلبی انشاء غیر طلبی هم بعضیشون مثل سیره تحجب سیغه مدخوزم سیغه نزر سیغه اقود عقل ها مثل سیغه قسم ببینید اونی که توی بلاقت ازش بحث میشه و ما شاید تا 6-7 جلسه دیگر هم 7 -8 جلسه دیگر هم توی بحث انشا میخوانیم انشاعات طلبی است انشاعات طلبی توی بلاغت ازش بحث میشه اما انشاء غیر غیرطلبی در حدی که حالا تو جلسه بعد من براتون توضیح بدم یه مقدار مختصری شما بدانید همونقدر بحث میشه که ایشون میگه دیگه بحث جدی روش نمیکنن چراش رو هم اون موقع میگیم به خاطر اینکه معانی گستردهی ای غیر از اون که تو نحف خوندی چونه سیر تحجب همونیه که تو نحف ولد شدیه معنای دیگه نداره. ولی فعل ام رو ما اینجا بخونیم می‌بینید که فعل هم بیست تا معنا داره سی تا معنا داره. پس این ارزش خوندن داره. یه معناش حقیقیه بقیهش مجازیه. پس این ارزش داره. اما دیگه تعجب نه. یه معنا بیشتر نداره همون هم یاد مید. لذا پس بنابراین یادمون باشه حتما یادمون باشه که انشا دو قسم انشا طلبی انشای غیر طلبی، انشای, طلبی انشای طلبی پنج دوش رو حتما بحث میکنن تو کتب بنابی هم رو و استفحام و تمنی و ندا ما بحثی ندارد انشا غیر طلبی به طور مختصر یه جمله یه گوشزد میکنن بیان میکنن مطالبی رو میگن ولی دیگه دنبال نمیکنن چرا؟ به دلیل اینکه معانی متعدده گسترده درش وجود ندارد حالا نگاه کنید با توجه به اینکه اینو خونده بخونم برای و قال بعض الحکمال ابنهی اینجا بعض به معنای یکیه و گفته یکی از حکیمان به فرزند خودش یکی از حکیمان به فرزند خودش چنین گفته یا بنیه ببین الان یا بنیه نداست ای عزیز من ای پسر من ای پسرکم یا بنیه تعلم فعل امر یاد بگیر یعنی دوتا کلامه یکی ندا یکی امر یکی سیغه نداست انشاء طلبی یکم تعلم سیغه امر است یا بنایه تعلم حسن الاستماع استماع یعنی خوب گوش کردن سما سمعه یعنی شنید استمع یعنی گوش داد رسول یعنی؟ خوب گوش کردن میشه؟ استمع یا بنایه تعلم حسن الاستماع ای پسر من یاد بگیر خوب گوش کردن رو کما تتعلم و حسن حدیث همونطور که سعی میکنی خوب حرف زدن رو یاد بگیری همونطور که سعی میکنی خوب حرف زدن رو یاد بگیری پس این یا بنایه تعلم حسن الاستماع کما تتعلم و حسن الحدیث ببینید این که چه چیزی الان جز انشای طلبیه یا انشای غیر طلبیه الان فعلا بحثشیم چون ما اینو خواستیم فقط شما تقسیم رو بدونید الان درست شد اصلا فعلا کاری نداریم ما فعلا انشایات طلبی رو برای شما تا رو گفتیم و غیر طلبی رو یه چند تا رو گفتیم گفتیم طلبی ها اونایی که طلب دوشونه غیر طلبی ها اونایی که طلبی درشون نیست با کلام ما ایجاد میشه تعریف دادیم بود حالا انواع اقسام مطالب مال های بعده درست شد اون مقدار که من ضرورت داره برای شما بیان میکنم اون مقدار که ضرورتش الان نیست یادگیریش مضره درست شد پس بنابر این الان ما یاد گرفتیم که یا گونه انشاء طلبی نداست تعلم هم انشاء طلبی امر میگه ای پسر من یاد بگیر خوب حرف زدن خوب گوش کردن رو همونطور که یاد میگیری خوب حرف زدن رو. درست شده نه؟ خب چون خدا به آدم چی داده؟ یه زبون داده تو تو گوش یعنی چی؟ یعنی که لاقل به اندازه ای که به قول خودمون میخوای حرف بزنید و برابر لاقل گوش کن وله اگر آدم بخواد همینطور همش حرف بزنه مطمئنا هل هوله خواهد گفت و مردم میگن آقا مگه بلد نیستی تو ببندی او ساکت شد ولی اگر خوب گوش کنه و مفید بگه مردم به اشتیاق پیدا میکنن و شروع میکنن به اینکه گوش کنن. خب بعدی رو نگاه کنید پنج و اوسا اوسا یعنی سفارش کرد اوسا عبدالله ابن عباسه عبدالله ابن عباس به سراموی امیر و کسی بوده تو کار تفسیر و قرآن و اینجور چیزها ها کار کرده سفارش کرده عبدالله ابن عباس رجلن یا آقای رو بهش نصیحت کرد و قل ببینیم چی گفته به این آقا عبدالله ابن عباس پایی میگه عبدالله ابن عباس خوه عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف قهل و عقابر صحابته یکی از بزرگان صحابه است فل علم در علم دانش سمیه بالحبر اصلا بهش میگه در یعنی دانشمند بزرگ علمی، با خاطر بزرگان علمش و به تائف سند و در تائف از دنیا رفت سند سمان و سالش سال 68 خب ببینیم چی گفته این آقا رو نصیحت کرده چیوش گفته؟ گفته لا تتکلم به ما لا یعنیک. گفته فلانی حرف نزن به چیزی که به تو ربط نداره. لا یعنیک یعنی لا یرتب تو بک. حرف نزدن باید چیزهایی که به تو ربط نداره یه بعضی موقع یه نفر یه چیزی بهش ربط نداره میپره وسط یه چیزی رو میگه یکی یکی دیگه سوال میکنه و شروع میکنه به حرف زادن اگر احترامشو نگه دارن بهش میگن ما از شما سوال نکردیم که بعضی واقعا ممکنه اصلا تنلی کنه نظام میگه لا تا تکلم به ما لاید. چیزی که به تو ربط نداره حرفشو نزن و دع ال کلام دع یعنی اترک کنار بگذار رها کن ال کلام سخنگفتن سخن گفتن اترک. اترک کنار بگذار فی کسی این به ما یعنیک در خیلی چیزایی هم که به تو ربط داره ولی یه چیزایی من ربط داره میگه ولی حرف نزن، مگر حتی حتی تجده یعنی الان تجده الان تجده ورکان خیلی سخن گفتن با در خیلی ها چیزا مگر اینکه حتی تجده له موضعا مگر اینکه براش محل پیدا کن جاش باشه خیلی جا هست بله به من رب داره ها ولی من حرف نمیزنم الان جاش نیست جاش نیست پس چی با؟ لا تتکلم نه دع امر این دو تا کلامه یکی انشاء طلبی امره یکی انشاء طلبی نهیه درست شد میگه سخن نگو جایی که به تو ربط نداره و بعد هم باز سخن نگو مگر جایی که به تو ربط داره و جاشم هست وقت و زمان و مکانشم هست ببینم اما نگاه کنید اون دیگه به ما لا یعنیک نمیدونم فرض کن فی کسیره به ما یعنیک حتی تجدل لهو موضا اینا دیگه بقیه قید کلامه ده تا آخر موضعن میشه یک کلام اما اون انشاعش اون ده لا تتکلم هم همین دار و قال متنبی گفته میگه لا تلق دهرکه دهر یعنی روزگار لا تلقی لقی یلقا یعنی برخورد کرد لا تلقه دهرک رو در رو نشو با روزگار خودت یعنی با مردمان روزگار خودت رو در رو نشو الا غیر مکترسن این غیر حاله مگه غرهادی که غیر مکترسن اهمیت نمیدی اکترسته یعنی اعتنا اعتناق اعتناقه. پس میگه با مردم روزگارت برخورد نکن با روزگار برخورد نکن روزگارت مگر اینکه که بهش اهمیت نمیدی به حساب نمیاریش الا غیر مجتز تا که اه بی اهمیت برخورد کنم این مادامه میشونم مای مستریه ظرفیه یعنی تا وقتی که مادام یزحب و فیه روح هکل بدن فیه یعنی در اون دهر تا موقعی که در اون روزگار در اون دنیا در این دنیا همراهی میکنه روح تو بدنتون یعنی تا موقعی که زنده تا زنده هستی سعی کن با دنیا بی اهمیت باشی آه یعنی اهمیت نده به روزگار خود به دنیای خود با اون رو در نشون مگر به این شکلی که اهمیت بهش نمیدی خب من با روزگار به روزگار خودم اهمیت ندم تا چه وقت؟ تا وقتی که در این روزگار روح تو با بدن تو همراهی میکن یعنی تو موقعی که زنده ای. یعنی تا زنده هستی به دنیا اهمیت ند. این هم نهی کردون لا تلق دهرک دهرک هم مفعول لا و مشترسن اون غیر مشترسن حال هست استسمای مفروق و اون مادام ما این مستری زرفی است متعلق لا تلق تا این نگاه کنید میگه یقولو حالا شهر رو معنا میکنی که من براتون معنا کنم لا توبال زمانه و سروفه سروف یعنی مشکلات مصیبت ها به روزگار و مصیبت هاش اهمیت نده مادم تحییه تا زنده هست فعنش شدت ها. چرا بهش اهمیت نده میگه فعنش شدت و یا یتعاقبان فیه علالحیه میگه زیرا خوبی و بدی سختی و آسانی شدت و رخا شدت یعنی سختی رها یعنی آسایش سختی و آسایش یه تا فی پشت سر هم تو این دنیا میاد علال بر کسی که زنده است گهی پشت بذین و گهی زین بپشت اهمیت هم نمید فلا مع حیات، پس بنابراین هیچ مشکلی با این روزگار نیست فلا یعصه پس ناامیدی نیست آه هر دوش هست. با این زندگی حالا اگر یک زمانی سخت شد، ناامید نشود. بگذرد این روز باشد. درست شد. خب اینم فهمید. حالا بیاید پایین نگاه کنید. میگه آن بعد از آن که ایلالمثال رابه، تجد قائله هو یونادی ولدده هو و یا أمره هو و یا أمره هو آنیه تعلّمه حسن سنالحادیث غلط نمیشه. و یا امره وان یتعلم حسن الاستماع ما حسن الحديث امر میکنه اون تو که یاد بگیره خوب گوش دادن رو خب بهش گفت تعلم حسن الاستماع الحدیث یعنی و الاستماع و یا امره وان یتعلم حسن و ذالک کما و ذالک کلامون و این یه سخنیه لا یسخنی وقال القائل عنه صادق القول و کاس یه کلامیه نه در نداش نه در امرش نمیشه بگیم این راست بیاد چون تا گفت ایجاد شد طلب اقبال تو ندا طلب تعلم تو انشاء امر او کاظم لانه لا یعلمونا یعنی لا یخبرونا زیرا خبر نمیده ما به حصول شیئن او عدم حصول به حصول چیزی یا عدم حصول و این نماه و ینادی و يعمر بلکه او داره ندا میکنه و هم میکنه. چیزی نیست که ما بریم باش مطابقت کنیم. ایجاد داره میشه با سخنه. کزالکلا یست خواهیت تصف عبدالله ابن عباسه فیلم سال الخامسه و المتنبی و فیلم سال از سادسه. همچنین نمیشه متصف کرد عبدالله ابن عباسه و مثال پنجم و متنبی رو درست شو متصف نمیشه متنبی در مثال ششم به صدق قبل کش نمیشه چون اینو دارن عم بکنه نه میکنه لعنک و لن منهما لا یخبروا عن حصول شیء یعنی نو عدم حصول اینا از حصول چیزی یا عدم حصول چیزی که خبر نمیدن نمیگن آمد یا نیامد که ما بریم بیرون ببینیم درست شو ولو انک میگه حالا اگر تو بری تتبع کنی جستجو کنی والو عندك تتتبعت جميع الكلام لو وجدت هولا يخرج عنها زين النوع این. اگه بری همه سخنای عالم رو نگاه کنی این دو تا خارج نیست ولی اصلا ما اول و اول خبرن و نوع ثانی انشاء اولی رو میگه خبر و دومی میگه انشاء انظر بعد از ذالکینا رو خوندیم دیگه انظر بعد از ذالکه ال جمل نگاه کن به این جملات جملاتی که دیدیم چه خبریا چه انشایو فل امثلات السابقه او فی غیرها یا بر تمام کلام های دنیا رو بررسی کن. همش. تجد. انظر تجد. نگاه کن خواهی یافت. کل جملت مکونتن. من رکنین اساسیین اساسی یعنی خواهی یافت که هر جمله ای تشکیل شده از دو رکن اساسی. همه المحکوم, المحکوم و و المحکوم به. نهاد و گذاره مصنع, و, مصنع. محکوم و محکوم و و محکوم علیح. و یا سنبل اولو مصنده نداری و ثانی اما ما اداهما هرچی غیر از این دوتا باشه غید غیدون بهش میگن غید تو اون جمله یا تو اون کلام و لیسه رکنه رکن اساسی اصاسی نیست یه هاشیهی با قول خودمون اینجا هست که نسبتا مطلب مهمیه و یه خودریزی که گذاشتم برای اینکه جلسه بعد بخانم جلسات جلساتی مقداری ما به قول خودمون تا با زبان این مبحث آشنا بشید حرکت کنتری رو میکنیم که شما هم همیشالله راحت بتونید یاد بکنید اینکه ما از همتون موفق و محیط باشید خدا حفظتون کنه خدا نگهدار.